در جلساتی فرموده بودید که خوب یه زمانی رو در طول روز با امام زمان خلوت کنیم بحل سکوت باشیم مقصود از سکوت چه هست؟ آیا سکوت همراه با تفکر چیکار کنیم که؟ سکوت همراه با یاد یه خودم مثلا خاطری کسی رو میخواد چطور سکوت میکنه به فکر اون نیست؟ تو خیال اونه اسمشه گذاشته برای خودشت فکر یه همهش به فکری دوست نه تو خیالشه آدم بشتونه با ایشون یه ده دقیقه به یاد ایشون ساکت بشینه او رو حاضر ببینه در حضور ایشون ببینه خودش رو ظاهران من اینه توی اون سکوت نمیتونن تمرخز کنن. طبیعیه. اگر فکرمون هر دارید. هر موقعی که مثلا یه چند ثانیه میگذاره تمرخزش به هم مکره ایشون رو صدا بزنه. یا صاحب زمان ادرکنی ولا نی. بعد که حالش دوباره برگشت سکوت کنه.